اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم اذا رجعتم إليهم قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نؤمن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ ثم حلمت ردون الى عالم الغیب والشهادت فیونبی اکن بی تعملون هنگامی که به سوی آنها بازگردید از شما عوض خواهی میکنند بگو عوض خواهی نکنید ما هرگز گفتار شما را باور نخواهیم کرد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 فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ برای شما سوگند یاد می کنند تا از آنها راضی شوید اگر شما از آنها راضی شوید پس بی تردید خداوند از گروه فاسقان راضی نخواهد شد الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم و نفاق اعراب با شدید تر است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 الله غفور و از اعراب بادی نشین کسانیند که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و آنچه را در راه خدا انفاق می کنند سبب تقرب به خدا و دعای پیام بر می دانند. آگاه باشید بیگمان اینها سبب تقربشان خواهد بود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 و اعد لهم جنات تجری تحت ها الانهار خالدین فی ابدا ذلك الفوز العظيم. و پیش گامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به از آنها پیروی کردند خداوند از آنها خوشنود گشت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 وَمِنْ أَهْلِ اهل المدینه مردو علن لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم يردون الى عذاب عظیم و از میان اعراب بادی نشین که پیرامون شما هستند گروهی منافقند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 والله از اموال آنها صدقه و زکات بگیر تا به وسیلی آن آنها را پاک سازی و تسکیشان کنی و برایشان دعا کن یقینا دعای تو مایه آرامش برای آنهاست و خداوند شنوای داناست علم أن... الله هو يقبل عن عباده أن الله هو آیا نمیدانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش میپذیرد و صدقات را میگیرد و بی گمان خدااست که پذیر مهربان است.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 ما يتوب عليهم والله و و گروه دیگری نیز موقوف بفرمان به فرمان و مشیت خداست یا آنها را عذاب میکند و یا توبه آنها را میپذیرد و خداوند دانای حکیم است والذين اتخذوا مسجدا ضراوا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 لمسجد مسجد على التقوى من اول يوم احق ان تقام فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اي هرگز در آن مسجد نی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 مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند و خداوند دانای حکیم است. این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم ان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 لائحون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف عن المنكر سپاس گزاران، روز داران، رکوع کنندگان، سجد کنندگان، فرمان دهندگان به معروف و باز دارندگان از من و حافظان و نگه حدود و احکام الهی هستند و مؤمنان را بشارده. ده ما کان نبی والذین آمنوا ای استغفر للمشركين ولو كانوا ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم براي پيامبر و كساني که ایمان آوردند شايسته نبود که براي مشرکان طلب آموزش كنند هرچند از نزدیکانشان باشند بعد از آنکه برای آنها روشن شد که آنها اهل دوزخند وما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدت وعدها فلم ما له أنه عدو لله تبرأ منه إن حلیم. و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر بد ای که به او داده بود پس چون برای او آشکار شد که او دشمن خداست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 و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر یقینا فرمان روای آسمان و زمین از آن خداست زنده میکند و می و شما را جز خدا کارساز و یاوری نیست لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُم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 و با راست گویان باشید ما كان لاهل و ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ ولا يطؤون موطئا يغيث الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين نیست که اهل مدینه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 و هیچ دستبرد و گزندی به دشمن نمی مگر اینکه به سبب آن عمل صالحی برایشان نوشته شود بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را زایع نمی کند وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرَتًا وَلَا ولا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ إلا كتب لهم الله احسن ما كانوا و هیچ مال کوچکی یا بزرگی را در راه خدا انفاق نمیکن و هیچ وادی و سرزمینی نمیپیمایند مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند پاداش نیکوترین کردارشان را به آنها بدهد وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّهَ فَلَوْ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ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 و قوم خود را هشدار دهند هنگامی که به سوی آنها باز گشتند باشد که آنها بترسند یا ایوها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار و اليجدوا فیکم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 و هنگامی که يَقُولأَّكُم زَادَتتهذ إمَانَ فَأََّ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 الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اما کسانی که در دلهایشان هایشان بیماری است پس پلیدی به پلیدیشان افزوده و در حالی که کافر بودند مردند أولا يرون أنهم يفتنون فی كل عام مرة أو مرتین ثم, ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آیا آنها نمیبینند كه در هر سال یك یا دو بار آزمایش میشوند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 صرف الله قلوبهم بی قوم لا یفقهون و هنگامی که این نازل شود بعضی از آنها به بعضی دیگر نگاه می کنند گویند آیا کسی شما را می بیند؟ سپس باز می گردند خداوند دلهای آنها را از حق باز گردانید زیرا کانها غروهیند که نمیفهمند. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم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 الاذر أن الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قد صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين آیا برای مردم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 این است الله پروردگار شما پس او را پرستش کنید آیا پند نمیگیرید؟ گیرید ایلیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا اینه یبدع الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون بازگشت همه شما به سوی اوست وعده خداوند حق است بیگمان او آفرینش را آغاز میکند سپس آنها را باز میگرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به عدالت پاداش دهد و کسانی که کافر شدند برایشان نوشیدنی از آب جوشان است و عذابی دردناک به سبب آنکه کفر می‌ورزیدند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 بتفصيل بیان میکند این فی اختلاف اللیل و وما و ما خلق الله في السماوات والارض لآیات لقوم ينتقون بیگمان در آمد و شد شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده است نشانه‌ای است برای گروهی که پرهیزگاری می‌کنند. این الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون همانا كانوا كصاني که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شده و به داند دلبست‌اند و کسانی که از آیات ما غافلند اولئک مأواهم النار بما كانوا يکسبون. آنها جایگاهشان آتش جهنم است به سبب کارهایی کنجا انجام میدادند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم بي گمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را به های بهشت پر نعمت هدایت می که نرها حاضر درختان آنجاری است دعواهم فیها سبحانك اللهم و فيها فیها سلام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 کذالک زین للمصرفین ما کنو یعملون و چون به انسان زیان ورنجی برسد در هر حال که باشد به پهلو خابیده یا نشسته یا ایستاده ما را میخواند پس هنگامی که آن زیان ورنج از او برطرف کردیم چنان میرود که گویی هرگز ما را برای دفع زیان و رنج که به او رسیده بود نخوانده است اینگونه برای اسراف کاران آنچه میکردند زینت داده شده است ولقد اهلكن القرون من قبلكم لمن ظلموا جاءتهم رسلهم بالب و ما كانوا كذلك القوم المجرمين. براستی که ما امتهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند هلاک کردین در حالی که پیامبران آنها با دلیل روشن به سوی آنان آمدند و آنها ایمان نیاوردند این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم ثم خلائف الارض من بعدهم لننظر كيف سپس شما را پس از آنها روی زمین جانشینان قرار دادیم تا بنگریم که چگونه عمل می کنید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أن ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 و من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ میترسم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فَعَالِ تنبیعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما عم يشركون غیر از خدا چیزهایی را میپرستند که نبی آنها زیانی میرساند و نسودشان میبخشد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 بی تردید رسولان ما آنچه نیرانگ می می‌نبیسند. هو الذي يسيرواكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 نما مثل الحیات الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختل نبات الأرض تختل طبیه نبات الأرض مما الناس حتى اذا آخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها وظن أنهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصیدا که ان لم تغنب الامس کذالک نفصل ال آیات لقومی یتفکرون مسئله زندگی دنیا همانند آبیست که از آسمان نازل کردیم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 این گونه آیات خود را برای گروهی که می اندیشند به تفصیل بیان می‌کنی. والله و الله یدعو الى دار السلام و يهدي من يشاء الى صراط مستقیم و خداوند به سرای سلامتی دعوت می کند. و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند للذین احسنوا الحسن وزياده ولا يرهق وجوههم قتروا ولذله اولئک اصحاب الجنه هم خالدون برای کسانی که نیکی کردند پاداش نیک است و افزون بر آن و تیرگی و خاری چهره هایشان را نپوشاند اینان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند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 چنان شوند که گویی با پاری از شب تاریک چهره پوشیده شده است اینان اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشراکو مکانکم انتم و شرکاؤكم. فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون و به یاد آورید روزی که همه آنها را گرد آوریم سپس به کسانی که شرک آوردند گویین شما و معبودهایتان در مکان خودتان بمانید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 پس از که خدا میان ما و شما گواه باشد که ما یقینا از عبادت شما بخبر بودیم هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت و ردو الى الله مولاهم الحق و ضل عنهم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 من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله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 پس به آیا از او نمی ترسید؟ فذالکم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون پس آن الله پروردگار حقیقی شماست پس بعد از حق چه چیزی است جز گمراهی پس چگونه روی گردان میشوید كذلك حقت كلمت ربك على الذین فسقوا انهم لا يؤمنون این چونین سخن پروردگارت بر کسانی که فاسق شدند ثابت شده که آنها ایمان نمیآورند قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فان تافكون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 الحق. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 وما يتبع اكثرهم الا ظننا. اِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ و آنها جز از گمان پیروی نمی کنند بی گمان از حق بی نیاز نمی کند یقینا خداوند به آنچه میکنند داناست. وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه الذی بین یدیه و لیکن تصدیق بين بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ و سزاوار نیست این قرآن به دروغ بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود بلکه تصدیق کننده است که پیش از آن نازل شده است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 و من نیز از آنچه شما میکنید بیزارم و منهم من یستمعون من الیک اف تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون. و از آنها کسانی هستند که به تو گوش فرا می دهند. آیا تو میتوانی کران را بشنوانی و هرچند نفهمند و من من ينظر إليك أفأنت تهدی العمي ولو كانوا لا يبصرون و از آنها کسانی که به تو مینه آیا تو می توانی کوران را راهنمایی کنی و هرچند نبینند ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون یقینا خداوند به مردم هیچ ستم نمی ولی مردم به خیشتن ستم می‌کنند. و یوم یحشرهم کألم یلبثو إلا ساعة من النهار يتعارفون بینهم قد خسر الَّذِينَ كذبوا بِلِقَاءِ الله وما كَانُوا مُهْتَدِينَ و روزی که خداوند آنها را محشور می چنان احساس می گویی گوی جز ساعتی از روز که یک دیگر را بشناسند در دنیا درنگ نکرده اند به راستی کسانی که لقای خداوند را تقزیب کردند زیان کردند و هدایت نیافتند و ایما نرینک بعض الذین عدهم أو نتوفینک فالینا مرجعهم فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ و اگر پاری از چیزهایی را که به آنها وعده داده این به تو دهیم یا تو را بمیرانیم پس بازگشتشان به سوی ماست پس خداوند بر آنچه که میکنند گواه هست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 و به آنها ستم نخواهد شد و هذا الوعد ان کنتم صادقین و میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ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 پس نصائیتی تأخیر می کنند و نپیشی میگیرند. قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بيات أو نهارا ماذا منه المجرمون؟ بگو به من خبر دهید ده اگر عذاب او شبانگاه یا در روز به سراغ شما آید. مجرمان چه چیز را اینگونه به شتاب می طلبند. اثم اذا ما وقع آمنتون به الان وقد و قد كنتم به تستعجلون باز هنگامی که عذاب واقع شد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 عذاب جاوید را بچشید آیا جز به آنچه که میکردید کیفر داده می‌شوید و یستن بیونک حق قل ای و ربی انه لحق و ما بمعجزین و از تو خبر میگیرند آیا آن حق است؟ بگو آری سوگند به پروردگارم قطعا آن حق است و شما آجز کننده نیستید ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به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 وعد الله حق لا يعلمون آگاه باشید بیشک آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست آگاه باشید همانا وعده خدا حق است بلیکن بیشتر آنها نمیدانند. هو يحيي و و ترجعون. اوست که زنده می کند و می و میمیراند و همه به سوی او باز گردانده می یا ایوه الناس قد جاءتكم موعظت من ربكم وشفاء لما فی الصدور وهدى هده للمؤمنین ای مردم به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه آمد و شفاایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالی افرحوا و, و خیم بگو بفضل خدا و بر رحمت او پس باید بدان خوشحال شوند که آن از آنچه می بهتر است قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. فجعلتم منه حراما وحلالا قلآ الله أذن لكم أم على الله تفترون بگو به من خبر دهید ده آنچه از روزیی که خداوند برای شما نازل کرده است پس بخشی از آن را حلال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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اَكْثَرَهُمْ لا و کسانی که بر خدا دروغ میبندند در باری روز قیامت چه میپندارند بیگمان خداوند بر همه مردم فضل و کرم دارد ولیکن بیشترشان سپاس گذاری نمی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 الا ئن أولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید همانا دوستان خدا نه ترسی بر آنهاست و نه آنها غمگین میشوند الذين وكانوا همان کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری میکردند لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ الذين يدعون من دون الله شركاء يَتَّبِعُونَ يتبعون إلا الظن إِلَّا إلا يخرصون آگاه باشید هر که در آسمان ها و هر که در زمین است از آن خداست و کسانی که غیر خدا شریکان را میخواانند پیروی از دلیلی نمی کنند. آنها تنها از گمان پیروی رویوی می کنند و آنها فقط دروغ میگویند هو الذي جعل لكم کو لتسكنوا تتسکوفیه و نهها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 سبحانه هو, هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون مشکان گفتند خداوند فرزندی برگزیده است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 بگو بیگمان گمان کسانی که به خدا دروغ می‌بندند راستگار نمیشوند متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید بما كانوا بر برخورداری ناچیز در دنیا دارند آنگاه بازگشتشان به سوی ماست سپس عذاب سختی به سبب آنکه کفر میورزیدند به آنها میچشانیم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 امرکم و شرکائکم ثم ملایکن امرکم علیکم غمتا ثم مقضو ثم قضوا ایلی ولا تنظرون و داستان نوح را بر برانها بخان چون به قوم خود گفت ای قوم من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 فإن تولیتم فما سألتكم من أجر إن أجری إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمین پس اگر روی بگردانید من در مقابل دعوتم از شما هیچ مزدی نخواستم مزد من تنها بر خداست لما مأمور شده ام که از مسلمانان باشم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خالايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 سپس بعد از پیام برانی به سوی قومشان فرستادیم پس آنان دلایل روشنی برایشان آوردند پس آنها مستعد نبودند که به آنچه پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان آوردند این چونین بر دلهای تجاوز مهر می نهیم ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين سپس بعد از آنها موسا و برادرش حارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم. پس آنها تکبر ورزیدند و آنها گروه مجرم بودند فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا این هذا لسحر مبين پس چون حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند بیگمان این جادویی آشکار است. قال موسا: «اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون.» موسا گفت. آیا در درباری حق چون برای شما آمده است چنین میگویید آیا این جادوست در حالی که جادوگران راستگار نمی‌شوند قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فرعون گفت تمام جادوگران ماهر و دانا نزد من بیاورید فلما جاء السحرة قال لهم موسى پس چون جادوگران آمدند موسی به آنها گفت آنچه شما از وسایل سهر می توانید بیفکنید بیفکنید فلما القو قال موسی ما جئتم به السحر این الله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 وحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون و خداوند با کلمات خود حق را ثابت و پایدار می کند گرچه مجرمان کراهت داشته باشند و من آمن لیمون پس من فرعون وملئه ان, ان فرعون لعال في لمن کسب موسی ایمان نیاورد جز گروهی اندک از قوم او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 فقالوا علی الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین گفتند بر خدا توكل كردهایم پروردگارا ما را دستخوش فتنهٔ گروه ستمگر قرار نده و نجینا برحمت که من القوم الكافرين و به رحمتت ما را از شر گروه کافران نجات بده وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين و به موسی و برادرش هارون واهي که برای قوم خود خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایتان را عبادتگاه قرار دهید و نماز را دارید و ای موسی مؤمنان را به پیروزی و بهشت به بشارت بده و قال موسا ربنا این ازنک آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 قال قد اجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون خداوند فرمود قط آن دعای شما دو نفر پذیرفته شد پس استقامت کنید از راه کسانی که نمیدانند دانند پیروی نکنید و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیم و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 و سرانجام ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تعدی در پی آنها رفتند چون فرعون هنگام غرق شدنش فرا رسید گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی به حق نیست جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند و من از مسلمانان هستم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 و این من الناس عن آیاتنا پس امروز بدنت را از دریا نجات میدهیم تا عبرتی برای کسانی که بعد از تو می آیند باشی و بی گمان بسیاری از مردم از آیات ما غافلند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 ان ربك كانوا راستی که بنی اسرائیل را در جایگاه نیکو منزل دادیم و از پاکیزه ها روزی دادیم پس اختلاف نکردند تا اینکه علم و آگاهی برایشان آمد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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين و مباش هرگز از کسانی که آیات خدا را تکذیب کردند آنگاه از زیانکاران خواهی بود ان الذين حق <متصفيق> علهم كلمة ربك لا يؤمنون <متصفيق> بیگمان کسانی که فرمان پروردگار بر آنها تحقق یافته ایمان نمیآورند.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 لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حین پس چرا هیچ شهر و آبادی ایمان نیاورد که ایمانشان سودشان دهد مگر قوم یونس چون ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنها برطرف کردیم و تا مدتی معین آنها را بهرمان ساختیم و الاو شاء ربك لا من في الارض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 وما ما تغنی الآیات و عن قوم لا يؤمنون بگو بنگرید چه چیز در آسمانها و زمین است و این آیات و هشدارها به حال گروهی که ایمان نمی آورند سودی نمی بخشد فهل تظرونا إِلَّا مثل ايامالذين خالو من قبلهم قل فان تظرو معكم من المنتظرين پس آیا آنها چیزی جز همانند روزهای کسانی را که پیش از آنها گذشتند انتظار می کشند. بگو پس منتظر باشید که بیگمان من نیز با شما از منتظرانم ثم ننجی من رسولنا والذین آمنو کذالک حقا علینا ننجی المؤمنی سپس پیام برانمان و کسانی را که ایمان آورده نجات میدهیم. اینگونه بر ما حق است که مؤمنان را نجات دهیم قل یا ایوه الناس این کنتم فی شک من دینی فلا اعبدو الذين تعبدون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 پس من کسانی را که شما به جای الله پرستش میکنید نمیپرستم ولی من تنها الله را میپرستم که شما را میمیراند و من معمور شده ام از مؤمنان باشم و ان وجهك وجهک للدین حنیفا ولا تكونن من المشرکین انك روی خود را به آیین حنیف متوجه کن و هرگز از مشکان مباش ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين و به جای الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی به تو میرساند نخوان پس اگر چنین کنی بیگمان از ستمکاران خواهی بود و ان الله بضرا فلا کاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم وأگر خداوند زیانی به تو برساند پس جز او هیچ کس نتواند آن را برطرف کند.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 کتاب احکمت آیاته ثم اوستوار من لد حکیم خبیر لام را این کتابی است که آیاتش اوستوار سپس روشن شده از نزد حکیم آگاه است که تعبدوا الله لكم <تصفيق> جز الله را نپرستید که من از سوی او هشدار دهنده و بشارت دهنده برای شما هستم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ و وان تولوا فانی اخاف علیكم عذاب یوم كبیر و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به سوی او توبه تا شما را تا مدت معینی به بهرهٔ خوبی بهرهمند سازد و هر صاحب فضلی را به اندازهٔ فضلش ببخشد و اگر روی بگردانید پس من بر شما از عذاب روز بزرگ بیمناک هستم. الالهی الله و هو علی بازگشت شما به سوی الله هست و او بر همه چیز توانا است. هم يثنون صدورهم يعلم آنها سینه را خمی کنند و سرها به هم نزدیک می کنند تا خود را از او پنهان دارند آگاه باشید وقتی که آنها های خیش را به سر می کشند، خداوند میداند آنچه را در دل پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند بی تردید او به راز دلها آگاه است